اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و مغفق و مؤین یه صلابات با هم بفرستیم و بحث رو شروع کنیم الله و الله و الله و الله و الله از سنف من الادلته گفتیم ادلی هستن که ما در کنار سیره یک چیزی رو زمیمه میکنیم و امضا اشاره رو به دست اولین دلیلی که بر این مطلب داریم که آقا جان اگر سیره‌ای هست شما در کنارش عدم رد اشاره رو قرار بده و متوجه بشو که شاره رازیست پس یه سیره داریم در چنارش عدم رد شاره داریم نتیجه میگیریم این سیره مورد امزای شاره است خب وقتی مورد امزا شد میشه ازش حکم شریع استنباد کرد دلیل شما برای این مطلب چیست اولین دلیل جلسه قلب شروع کردید وجوبه امر به معروف و نبیت مانکن بود بذارید این رو من بینمیسم تا دوستان اتران بیان برسم سنتر از پس عدلی. اثبات پجییت سیره های اقلائی همه ها آه. همه س... همه سیره ها باز اینجا اشتوه نشید سیره های آمه رو همیشه سر به سرون از درچه از از مزمان مثلا عدم در در به سیر از عدم به سیر کش می نمایت چشاه نسبت به آن رازیست و آن را امضا نموده است اگر یک سیره ای باشه ببینیم شاهره هیچی نمیگه از کجا می فهمید کنیم درسته؟ دلیل اول اینه چه؟ خب اگه درست نبود بر امام نهی از منکر واضح بود حتی نحیش میکرد نهیش نکرد پس میشه راضی است لذا اینها ذهنشون لفته و عدلی از منکر و به من عدلی وجود امر به معروف و نهی از منکر و ما میدونیم اگر قمره به معروف و نهی از منکر واجب است و این سیره منکر است برای ما واجب نه نکرده پس برمون منکر نیست منکر نیست یعنی راضی بهش حالا یه سال همینجا از شما بپرسیم اگر شاره از سیرهی با وجود وجوب نهی از منکر نهی نکرد یعنی سیر منکر نیست دیگه وقتی منکر نیست یعنی امام به اون سیره رازیه و شاره طبقه اون حجم جر کرده این جرش به دست میان این اشکال دیگه ای این اصلا اینجا نیست اینو روش فکر کنید چون تو دلیل های قبلی این اشکال رو داشتیم چون اینا میگفتن چه آنها جام اگر هم این باشد مثلا دقیقه تو ثابت باشد جر نمیشه به بحث برس صحت سیره یادتونه گفتیم اگر سیره آمه حتی یقین کنیم که صحیح هست باز خاندارات این حجت عقلی میمونه شرعی چیزی معلوم نیست ثابت بشه شاره بیاد طبقش حجم جل کنه حالا اینجا این اشکالش رو روش فکر کنید این رو چتاب اشکال نه نه نه آه. اون اشکال به خود این هستش که شاره شاید نهی از ما نکرد نکرده اینجا به خود میرونم از ساعت من اینو دارم میگم میگم اصلا برپس هیچ اشکالی هم وارد نباشه به این دلیل و ببینیم که شاره نسبت به این سیره رازیه اصلا کشف شد به شاره نسبت به این سیره رازیه چون باید نهی از ما کرد نکرد پس رازیه قبول کنی. همه شو قبول کنی. رضای جعله باش آه. این رو بگم. این رازیه یعنی حکمی هم تبقیه اون الان جعل کردهش آره. امضا یعنی امضا به اون محنان که اینا گفتن. این ثابت میشه. اینم انگار یه جایی اشکال داره. اینم حواستون بهش باشه. تو چطاب نیست فعلا. خیلن. سخته جعله باش. آره جعله باش. شما. الان ممکنه من تو خیلی از این کارهای که توی مدرسه میبینم راضی هم ولی به من نیست که حجم جهر کردم نسبت به اون مناسب یا مماسب او مگم این که بگید نه شاره در هر قضیه این حجمی داره تو اون قضیه هم حتما حجمی داره و اون سیره چون این راضیه حجمش قطعا مناسبه اون دیگه خلاف اون سیره که حجم نمیدونه چه این اشکال همون اشگاهی که تو سری عامه گفتیم دیگه تو اثبات صحت سری عامه همین اشکال رو گفت پس هم بد نیست این یه تو باشه هر واقعه‌ای اشاره حکمی داره و غیر اون چیزی که راضیه حکم نمیکنه چی سوال اینجا یا یا یا یا تعلق هم, هم تکلیفی هم خودش کسایی هست کسی که با دیکشنر ادوکر چیوند سال از آره دیگه آره دیگه آره دیگه آره آره نفرمان شما یه مثال برای همین بحث که الان گفتم میشه یعنی یک سیرهی هست شاره سپوت کرد ما هم این دلیل امرت به معروف نهی از منچر رو پذیرفتیم گفتیم شاره نهی از منچر نکرده پس نسبت به این سیره راضیه. اونا یه مدل خاصی مثلا سیره دارن سیره مستحتس هست فرض الان بیمه به این شکل سیره شد دیگه نگفت این یعنی شاره مماثل با این بیمت ها حکم داره یعنی میگه که البیمت تو مستحبت مثلا یا البیمت ها یا نه شعره بگی من فقط کاریتون ندارم ببینی کاریتون ندارم نه اینکه که حکمی هم تو رساله نوشتم کاریتون ندارم باید این میکنی میکنه. که از هم قایده ملازمه یا قایده بگی که در هر واقعی شاره حکمی دارد پس تو اینم حکمی دارد یه حکمش هم نمیتواند مخالف اون چیزی باشه که راضیه بهش هست. یعنی یه حکمی ازش به میاد که این بیمه اتاقا جایزون این به دست میاد که واسه و خوبیه این نفته بوی بود روش بعدش باید کار کنم از دلیلول اول رو از همه جا میخونه وجوب امر بالمعروف معروف و نهی عن المنکر. یه‌صو. این وجوب امر بالمعروف معروف و نهی از منکر تو این بحث. بس؟ در چی؟ سر. باشه. آیا صفرم؟ در چی واجبه؟ اینو امام یا اون اهل سیره در آه واقع نظر شما؟ آیا خودسر نظر شما همینن؟ وجوب امر به معروف بر امام یا بر اون سیره بر اون اهل سیره بر اهل سیره خب الان می خونید ببینید کدوم درست از این دو تا نظر دیدید قد استدلله الهجیت سیره ال باشه همه سیره ها رو داریم میگیم نه سیره های عامه به عدلت وجوب العمر بن معروفه و نهی ان المنکره دیگه نمیگه برچی تقریبش رو میگه به حاضر تقریب میگه از از سیره سیرت و اقلایی تو علا فعله او ترک سیره بر است مثل بیمه کردن یا ترک مثلا علا سیره بر این است که دیگه حمام ها خزینه نیست چی میگفتن خزینه میگفتن چی میگفتن قدیم ها او تر چه؟ شده. شده این سیره خب امام این سیره رو میبینن ولم ینها المعصومو یعنی ینها بخوریدیم چرا شده ینها؟ چی؟ چرا شده ینها؟ بی... یعنی یاش حسید شده و... آره دیگه ینها بوده یفعلا لم اومده جذب شده لامار فعلش افتاده ینها آن الفیل امام از اون فعل تو اون اولیه سیره برف مثلا بیمه چاله سیره شده امام نه هیچ نکرد ولم یامر به این فسانی تو مثلا دومه که ترچ بود مثلا خزینه رو مسلمان‌ها تهاج کردند همام خزینه بود امامم نمیواد اون رو امر کنه بگه آقا جان ای مردم حمامتون باید خزینه داشته باشه تا تهارت شرم حاصل بشه مثلا اینا نگفتیم امام از سیره نه نگرد یا عمر نگرد کشف از آل کرد انجواز الفعل و عدم حرمتهی و عدم وجوبهی معلوم میشه که این که امام علیه السلام از این بیمه نه نکرد این حرمت ندارد جواز فعل و عدم حرمت اون خزینه رو هم امام امرش نکرد معلوم میشه که وجوبی ندارد پس این عبارت جواز فعل و عدم حرمت مربوط به یکی از اون دوتا مورده که سیره بر فعل باشد روش بنویسی جواز فعل و عدم حرمته در جایی که سیره بر فعل بود این عدم حجوبه هم در جایی که سیره بر ترکه و الا اگر شما بگید که نه جواز این فیل اینا به دست نمیاد میگیم ای یعنی شاید این بیمه که ما انجام میدیم و امام هم میبیند و هیچی نمیگه این شاید حرام باشه خب اون وقت فکر کنید بر امام اشکال وارد میشه که ای امام بزرگ باش. بیمه حرام بوده ما هم داریم انجام بیدیم شما هم میبینی هیچ چی نگفتی خب میگفتی حرامه ما ترکش میکردیم بر امام این مشکل وارد میشه نوزو الله. و چون ما میدانیم امام این مشکل رو ندارد امام محسومه پس اگر نه نکرد از این فر یعنی فرمتون جایز همه یعنی اون سیره مشکل نداره سیره درسته خب ثابت شد و الله یعنی اگر کشف نکند یا بگو اگر فیل جایز نباشد لازم تخلف المعصومه علیه السلام ما انعداء فریزت الامر به معروفه و نحیه انلمان کرد توضیحش هم از کردم yeah. چون امام علیه السلام فعل حرامی را که در مقابلش انجام میشود نهی نفرموده است خوبی خلاف اسمت و خلاف اسمته و چون ما میدونیم امام اسمت دارد همچین اتفاقی نیفتاده پس این پسش هم اینجا بگیرسید بعد از این خلاف پس اگر امام علیه السلام نه نفرمود یعنی آن کار منچر نیست پس نتیجه میشه سیره حجت پس و سیره درسته و حجت خیلی خیلطا چطور این دلیل ببینید الان یه دلیل خوندیم هیچ وقت تو مطالعه تو مثلا یه دلیل خوندید رب نشه خب بعدش دلیل رو خوندی یه لقص وایس حتی کتاب ببرد بعدش فکر کن به خوب یه لحظه تصور کنیم مثلا توی مدرسه سیرهی انجام میشه بلا تشمیح مدیر مدرسه هم اینو میبینه مثلا میبینه جساتیت شب بیان اینجا و بزن میبونه درست های سیره دیگه مدیر مدرسه هم میبونه. بعد ما میدونیم اگر کار خلافی انجام میشه که مفسده ای داره بایدشون تذکر بده نحی از منجر برشون واجبه حالا اینشون هم این میبینه و هیچی نمیگه خب منون این درست آه. چون اگر انجام نده نحی از اون چرب رو زیده پا گذاشته وجوب نحی از اون چرب این دلیل چطوره بعد؟ اما از یعنی یه مصلحت دیگه ای میبینه مسلحت. خوشش نمیاد از این سیره میگه آقا جان چه کاری مثلا مثلا میگه. ولی میدونه الان بگر یه مفسده رخ میده یا میگه اب نداره بذار باشه یه مسلحت مهمتری هست اینا خودشون متوجه بشن بهتره تا من بگم یا اینکه اصلا به اطلاعشون داده نشده به اطلاعشون رسونده نشده ایشون مطلع نیست میتونه اینطور باشه پس از راه نحی از منچر یه مدار سخته چون نحی از منچر داره ما الان از یک مستمسکی استفاده میکنیم که اون مستمسکی خیلی دنگ و فنگ داره نحی از منچر و امر من خیلی دنگ فنگ داره شرایط داره دیم دارم. از این ور از اون ور خود وجوبش این مدار بحث داره وزا از این استفاده نکنیم بریم سراغ عدده دیگه, دیگه. حالا ببینیم اون مناقش ها چیه؟ دلیل های دوگه هم داره. گفتیم نقطه دلیل جا پس نگران نباشه. اینو ازش به نظر میرسه که باید تشپوشی کنیم. این دلیل خوبی نیست. تو ادم و توفر شرائط وجوب الامر بالمعروف و نحی انلمان کره او ادم العلم بهی ببینید دوباره نگفت اون وجوبه بر چی؟ وجوبه امر بالمعروف و نهی از کره بر کی؟ الان روشن نشد براتون آقای از کرد وجود امراف به معروف و نحی از ممکن بر اون اهل سیره یا امام بدیم تو او عبارت دوباره ادم توفر یعنی عدم حصول حسور حاصل نشد یا توفر یعنی فراغانیه ولی این جوجه ها به نظر میسته که عدم حاصل شدن گرد آمدن محقق شدن شرایط ولو فراوانین رو من ندارم او عدمال علم به علم نداشتنه به آن این هم الان یک جوزی داره یک متعلقی داره که روشنیست عدم علمه چه کسی؟ پس دوتا تا متعلق الان شما طلبتون یکیش وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر کی یکی هم عدم العلم چه کسی منظور چیه اون اهل سیره نمیدانند یا نعوذ الله ایمان نمی کدوم حالا ببینید میگه که ان للوجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکره. بخونید شراء ط شرایط عدیدتن اسم اینه هست اینه لوجوب الامر به معروف شرایط عدیدتن اینه فیزار که لعب رتن دیگه جارو مزرور خبر اینه مقدم شده اسمش رفته اون پس باید منصوب بخواه دیگه برای وجوب امر به معروف و نحیز من کرد شرایط عدیده است چرا از این استفاده کردید؟ این کلی دنگ و فنگ داره مستشکل میاد از این همه شرط و شروع یک رو گیر میده بگه این شرطی جا محقق نیست او خراب میشه بعضها غیر و متوفرن فر مقام بعضی از اینها حاصل نیست گردامده نیست یا محقق شده در این مقام که شما بحثش رو دارید میکنید نیست یک چطنق جز تکلیف علا تارکل معروف یا فایل مجد دو پایین در، خط پایین و که احتمال تأثیر دوت تا شرطش رو جیر میده میگه آقا جان اولا شرط همه به من رو نهید من کرد اینه که برون شخص کار حرام باشه یا واجب باشه که ترک کرده یا حرام باشه که دا انجام میده الان شما بچهی که نماز نمیخونه مثلا میتونید نهی از منکر کنید؟ بگید بچه چند چرا نماز نمیخونید؟ امرو به معروفت میکنم میشه؟ چرا؟ چرا اصلا تکلیف نداره؟ حالا این مثال بهتر بزنم انسانی که خوابه نماز صبح خوابه بیدار نمیشه قشقم داشت پاشو بخوره بیدار, بیدار نمیشه بیدار نمیشه تا نماز غذا میشه الان منکر رو انتان داد نای خواب بود دیگه اختیار کنم. اختیار شرط تنجزه؟ علمه به تکلیف من آنجا نشستم نمیدونم پرشید گذره گرفته پرشید گرفته گیر من نمیدونم شما از دور من نگاه کنید ببینید که من نماز آیات نمیخونم الان من مرکنی مرتکب شدم بر شما واجب است بید نحیز مرکن کنید آقا چم چرا نحیز مرکن چرا نماز آیات تو نخوندی نحیز مرکن نمیدونستم من یعنی تکلیف برای من منجز نشده خب تکلیف بر من منجز نشده شما امر به معروف و نهی از منکره نسبت به من بر شما واجه نیست اینجا می همچین چیزی هست تکلیف بر سیره احالی سیره منجز نیست لذا بر امام نهی از منکره اینا واجه نیست چطور منجز نیست بابا اینا یه کاری دارن انجام میدن سلام شما همین چطور منجز نیست این توی این جتا از بحث قفلت استفاده میکنه میگونه قفلت تونه حواسشون نیست حالا ببینیم توجه خواهیم چه تنجز تکلیف آقا جان تکلیف متنجز نشده است تنجز نیافته است بر کی؟ بر این اهالی سیره که دارن یه کاره خوبی رو ترج میکنن کار واجبی رو ترج میکنن یا کار حرامی رو انجام میدن الاتاره که المعروف او فاعل منکره این الات متعلق به جزه. و هوا خب این شرط وجوب امر به معروف رو نحی ازمان کرد بر شماست و هوا منتفیم خب شرط است. وقتی منتفیش شد پس بر شما واجب نیست اینجا بر امام واجب نیست و منتفن فی ما ازا عمل المؤمنون وفق البناات الاقلاییت مؤمنون ببینید این مؤمنون از تو باشه چون تو نکته بعدی احتمال تأثیر اونجا غیر مؤمنین رو داشت این مؤمنین اون غیر مؤمنین حالا میرسیم مؤمنین چه کار میکنن؟ بسید اقلایی عمل میکنن مثلا الان همین بیمهی چه از کردم بیمه شخص سال است شاید در واقع حرام باشه ولی پرچی ماشین می نامه ماشین میتره، نامه داره ماشین میخره اصلا نمیپرسه به ذهنش نمیرسه که این شاید حرام باشه. میگه اول ماشین رو بیمه کنیم، بعد استاد بزنیم. در حالی که این شاید اصلا حرام بوده و امام هم چون میبینه این قفلت داره، قفلت که داره پس حرام نیست برام، منجز نشه که حرام نیست. پس چون حرام نیست امام بیاد بگه حرام را تنجس کنید، کدام هر را که تنجس پیدا نکند؟ وفق آتل اقلایت غفلتن زیر این غفلتن این خط بکشید. غفلت داره غفلت داره پس منجز نیست منجز نباشه برو حرام نیست حرام نباشه نحیات منکرش واجب نیست دیدی چند تا نفته شد اینجا می نیستم. این وجوبه رو به من رو نحیات منکر تقریب این استدلال اینجا اتمن برسید بعد مناقشه را توش بنویسید به این مناقشه یک شرایط امره به معروف رو نهی از اونجر حاصل نیست اون حاصل نیست رو می نیزن ببینید بگیم که چون تکلیف بر احالی سیر منجز نیست حالا یک گفتم میگم عمل به سیر توسط اونها گفلتن این عمل به سیر که گفلتن انجام میدن عمل مؤمنین به سیر گفلتن گفلتن که شد نتیجهش عدم عدم تندجز عدم تندجز که شد پس عدم تکلیف یعنی فعل ها حرام نیست یا ترکی واجب نیست وقتی فعل ها حرام نیست یا ترکی واجب نیست پس بر آمر به معروف واجب نیست آنها را امر به معروف یا نهی از منکر نماید اینجا امام واجب نیست نهی از منکر کنه امر به معروف کنه پس نگید اگر امام نهی از منکر نکند سیره هم برد باشه حس امام خلاف اسمت عمل کرده نه بر ما واجب نیست امام هم ویل کرده این رو خب حالا یه سؤال متوجه شدید دیگه منارشان این واقعا میتونه درست باشه این هش یعنی امام میبینه یه سیری که خود سیره مخالف رضایت خداست خدا راضی به این سیری نیست انجام میدن ولی امام میگه خب چون تفلت دارن حرام نیست بهشون و چون برای ما حرام نیست پس بر من واجب نیست نحی از منکر کنم پس خدا خود شما ما رفتیم دوباره کارهای خودمون این رو رو میشه مالای... نه بحث مالایرمون رو اون نداریم میگم که اقاب کنیم اونها رو اصلا به احالی سیره کار نداریم این برای امام واجبه که نهی از منکر کن اونها رو تو اون وادی نرید اون یه وادی دیگه است یعنی امام ببینید شأن امام این هستش که دنبال یه بهانه میگرده که پیدا سران کار خودش یا نه امام میگه بالتره اگرم غفرت دارم خب از این غفرت باید رو در بیاریم دیگه تو قفلت بمونه و خب میگه آن کار رو دیگه این اونچو واقعی شاره مثلا با بیمه راضی نیست موافقه نیست اینا غفلت دارن اینا غفلت دارن خب شاره میگه حالا چه غفلت دارن پس حرام نیست پس خدا فشار من رفت اونچو که این چیز مثلا واساله مردی و فردی نیست مساله مساله سیزاست آره درسته یعنی یه چیز اجتماعی داره شکل میگیره امام میگه به من چه میگه اولاً حرام نیست که پس خدا این رویه نماز میگه این نیست اما اگر بتونه اونها رو نهیاز منچر بکنم میگن میکن کار نکنید این سیره اولا قفلت دارید خوب از قفل در بیاد. سیره سیرتون سیره خوبی نیست درستیس خدا راستی سنجام نه دیدین کار رو لذا این جای تنبول داره این مناقشه که میگن از جهت روی دفتر در روی کاغذ درست ولی در واقع اون اینجوری میشوند نه در جای شماست خب مزوق که فکر کنید دیگه رو اینا اینجوری فکر کنید و که احتمال تأثیره اینم دومین نکته شرط دوم امره به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر است یعنی شما اگر میبینید یه نفر یه حرامی رو انجام میده برید بهش بگید نهی از منکر کنید هیچ اصلا آب از آر تکنه هیچ چی نمیشه هیچ تأثیری نداره اون شما نگه لازم نگاه میکنید تو دلش ترس بیفته اگر یا تو دلش نگران بشه که یه دموکراسیه کار را نمی‌کنه چی بود چیزی گفت ادامه بدین قراخو احتمال تاثیر اگر نباشد مثل مثال که گفتم اون موقع دیگه بر آمر به معروف واجب نیست عمل کنه اما تاثیر اگر داشت حالا اینجا امام علیه السلام نگاه میکنه میبینه اینا همه‌شون دارن خزینه رو رها می‌کنند در حمام و بیمه اتومبیل رو بهش عمل میکنن یه سیره برتر یه سیره بر فیل. بعد امام میان که خب من برای چی بگم؟ بگم من هی تحصیل نداره که امام بیاد بگه یعنی دیگه مردم بیمه نمیکنن چرا؟ بیمه میکنن بدون بیمه, بیمه آزاد میفرد متشریع خب بحث ما سیره متشریعه نیست بحث ما سیره اوغم است. پس این نکته خوبیه که اگر متشریعه باشن احتمال تأثیر هست غیر این، یعنی اغلا به ما هم اغلا اونجا شاید احتمال تأثیر نباشه ببینید حالا این چی میگه میگه ویچه احتمال تأثیره و, و این غیره این احتمال تأثیریش غیر متوفره حاصل نیست فیما ما ازاقامت سیرت الاغلاه غیر المؤمنینه علا شغله ببینید رفع غیر ما چرا چون اوت شری از امام بالاخره یک تحصیلی بی پذیرم البته خب سنی نباشن دیگه بعضی از سنی ها امام بگه اون خلافش هم بر بسیار خوب تمام چون امام میبینه این غیر متشابه اصلا تو کشور فرانسه چشور روسیه، چشور چین الان تو چشور چین سیره شون برای یک سری کارهاست که از اون کمونیستو از چیزهای کمونیستیو اینو نشد کرده و اصلا اونا مالکیت خصوصی اونها خیلی ندارن حتی من چندو پیش شندم که اونجا یه دفعه میگفت میگفت مثلا تو خیابون میری، اول خیابون کلی دو چرته دیسته. حاجی حسین سواره یکیش میشه و میره اون و تو منصب پیاده میشه میذاره اونجا چه بناطی او یعنی مال خودش نیست مال هم است اونجا سوار میشن به اون میرن دوباره یه جا دیگه میذارن اونجا خب الان این سیره است امام علی السلام اینو میبینه بگه اون چینی ها میگن این چیه یه عرب اومده اینجا بگه. چی میگه چی میگه مثلا تاثیر نداره این اینو میگه خب درست این هر؟ اعتماد تاثیر نیست یا احتمال تأثیر هست بلاخره اون یه لحظه فکر میکنه میگه آقا جا احتمال تأثیر این نیست که تا تو گفتی اون یه دفعه از آقا الله ایمان اووردیم به تو توبه کردیم و طلبه بخشش میکنیم آقا بیاید همه عرصه این تأثیر کامل دیگه هست ولی تأثیرات پایین ترم هست حالا اینجا آیا اصلا احتمال تأثیر دیست چطور میگه که معلوم نیست، غیر متوفر، احتمال تحصیل نیست برای غیر مومنی لذا امام اگر نحی از منجرد نکرده به من نیست که کار رو قبول داره قبول نداشته ولی چون احتمال تاثیر نمیدید نگفت چیزی نگفت این است و هازا مضافند کلا ان و کوتد معصومه و ان انسیدت الاغل لا یک شفا ان امزای ها جز تکلیف علیه این آخرین نکته است که تو این مناقشه میگه البته بازم مطلب داریم هنوز تعمل نشد ولی فعلا این نکته سوم در واقع میشه ببینید منو این نکته خوبیه و نکته به مثلا تو شما هم میگه که بعضی وقتا هم که شما گفتید بعضی وقتا امام سیری رو میبینه ازش ناراضی هم هست ولی اینو نه از منچر نمیکنه یا اگر کچه فعل هست امر رو بهش نمیکنه چرا؟ چون یه بفزده ای توش می بینه یا مسلحتی درش می بینه لذا نمیگه مسلحتی می بینن چه فعلا این باشه؟ مثل هم مثل که اینجا زده شد. پیغمبر از زیمون می بینم. الان تو همین چشم الان اختشاشات هست و مثلا نیرو انتظامی برخوردم کنید مثلا این سیر مثلا رهبری هیچی نبیه چرا؟ میتونست به آقا سرکوب کنید بزنید بزنید تا جوان های مومن کشده ناشن ولی بسلحتی داره اینجا این رهبری میدونه جمع کردن اختشاشات با سرکوب ارزشی نداره جمع شدن اختشاشات با سطح فکر مردم با بالا رفتن سطح فکر مردم با آگاه شدن مردم اون خوبه البته خود هزینه داره حزینهش جوانهای دستگولیست که از بست میدیم شهید میشن ولی میارزه یعنی چند نفل اینجوری شهید شدن, شدن با اینکه خیلی ناگوار و خیلی تلخه ولی خب در راه بالا رفتن آگاهی مردم قربانی شدن اینها دیگه هزینه حزینه است که میعرضه اونها هم پاداش خودشون رو واقعا شهید میگیرن دیگه و خیلی هم بالا داره شاید اون کسی که تو جنگ عادی شهید میشه از اون کسایی که تو میدان جنگی با دشمن شهید شدن به نظرم بالاتر باشه چون اون میره با دشمن جنگید و واشون یه میدان رسمی بوده این تو خیابون بوده تنها ترفه پیش با بود تازه اونم کشتن عادی نیست اون سنگر چوبولون با لگت رو به سر و چاوه اونها خیلی اصلا زرچ پشت میکنن این حاله خب شاره همین حالت رو ممکنه پیش اومده باشه نمیاد نه کنه میگه بذار خودشون بدونه مثلا یه مثال دیگه سیره در چشمه ما برین شد که بچه دار نشد دید. بچه چی تا کنش پنش دو شیش دو داره خوب. یه کاری کردن مثلا طرف پنج تا بچه داشت دیگه اصلا اجاره نشینیش براش دیگه تقریبا خیلی یه معذره عجیبی بود. می‌رفتیم خونه ببینی اون طرف مقابل صاحب خونه تصورش می یه دونی می یه دو تا بچه داری یه دفعه گفت شش تا بچه دارم گفت آقا جون من خونه به همچین کسی نمیدم شش تا بچه داشته باشه. چرا چون سیره شد که بچه نیارید دو تا آخرش دوتا. این سیره رو فرض کنید شاره میدید. و مخالف بود رازی نبود بهش اما چرا نگفت چون میدونست بعد از 20 سال خود این مردم متوجه میشن و اون متوجه شدن و آگاه شدن مردم خیلی میارزه اما اول با سرکوب بگی آ نکنید این کارو این مرفا اون در واقع به زور انجام دادن کاریست تحمیل کاریست بدون آگاهی مردم اما این با آگاهی مردم هست. خیلی میارزه حالا این نکته تو پرنتزی این نظام ما خیلی رویه به نظر من خیلی دو، این اصل تکیه داره که کارها رو با آگاهی مردم پیش ببره چون نظام مردمیه نظام زوری نیست، دیکتاتوری نیست تبلیغاتی هم نیست آگاهیه، آگاهی مردم البته به از جا باید بدون که باید کار کنیم، باید تبلیغ کنیم باید تبیین چه تبیین جهاد تبیین شد جهاد واقعا مرگم باید آگاه کن این رو پس بخونیم و هازا مضافند سومین نکته الانل سکوت المحصومه علیه السلامو انسیرت الاغلا که رازی نیست لا یک شفا ان امزاه ها رقمتنب جز تکلیف علایه یعنی اگر از اشکال اول ما چشکوشی کنیم که بگیم نه تکلیف این ها است. هست قفلت،, قفلت هم ندارن احتمال تأثیرم داره ولی باز معلوم نیست امام راضی باشد ازلاللهو کان لعجل مزاهمت م... مسلحت او مفسدت اهمم روی این حساب امام چیزی نگفته خب دیگه این اشکار دیگه کلن اصلا زیرا به همه این بسار رو زد ما این همه تلاش کردیم از نحی از مانچه رو این ها شرقیتش رو بدونیم امام نحی از وانکرم بعد میگه حتی نحی از وانکرم با وجود شرایطش برای ما واجب باشه ممکنه مصلحت دیگری باشه لا یوقا از یوقا بله رحمت عن اجز تکلیف یعنی اون اشکال اولی که گفتیم با اون اشکال اول برای ما واجب نمی‌شد دیگه میگه حالا اون اشکال رو ازش ترفن نظر کنیم بگی ما آجان این سیره قفلت مفعتی توش نیست یعنی تکلیف برشون یعنی حرام هست بیمه کردن و اونام خودشون میدونن ترک خزینه هرمان بر اونها ترک واجبه و اونها هم میدونن قفلت ندارن خب میشه این منکرش امام اونو میبینه ولذا الان بر ما واجب میشه که نحی از منکر کنه ببین اون وجود بر امام بودا هرکه شما درست بود از کردید وجوب نهی از منکر و امر معروف بر احالی سیره رو نمیگیم بر امام رو داریم میگیم حالا امام میگه آقا اینا حرامی انجام میدن تکلیفم برای ها منجزه الان داره حرام نمشته میشه بر من واجب از نحیزمان کرد کنم ولی انجام نمیده میگم چرا؟ یعنی از سیره رازی؟ میگه نه رازی نیستم ولی بگم مشکل بدتری پیش میاد به خاطر مفسدی یا نگم بهتره که بردن خوبشون بفهمند یه مسئلتی داره از اینجا پس اون اجازه تکلیف یعنی اجازه ت یعنی با چشم پوشی هست اشکال اولی که گفتیم خب لایقان روش بینه پاسخه به اون مناقشه اول چه گم نکنید چی داره میگه مناقشه اول همین تنجاز تکلیف بود دیگه یه لحظه ببینیم این به اون احتمال تأثیر یا این مسرحت اهم این ها ربطی نداره حالا لایوغال لا داره اینو میگه میگه شما اومدید گفتید که بر اقلا تکلیف منجز شاید نبوده چون قفلتن بران انجام میدن وقتی منجز نیست در مدشی اونها براشون حرام نوشته نمیشه چون تکلیف ندارن وقتی حرام نوشته نمیشه امام هرچه حرامی نمیبینه در نتیجه بر امام نحیه از حرام موضوع نداره اینجا پس واجب نیست امام رو همین اصاب چیزی نگفته این میگه بابا جان اینجا یه شبه حکمیه داری یعنی من اغلا که دارم ماشینم رو بیمه میکنم و این سیر انجام میدن نمیدونم این بیمه کردن حرامی یا نه خوب گوش کنین اگر خوب گوش جوابش همین خود بیانش هست من سیره من احالی سیره نمیدانم که آیا این بیمه کردن کار جایزیست یا نه خب وقتی نمیدونم اسم این میشه شبه موضوعه یا حکمیه شبه موضوعه یا... یعنی نمیدونم این نجسه یا کلهم حکمه یه چیزی رو نمیدونم بیمه کردن کلا نمیدونم حکمش چیه شبه حکمیه دلوقتي. در شبه حکمی علمای مشهور علما میگن که باید برید چیکار کنید باید بپرسید وقتی حکمی مسئله ایران نمیدونی باید بپرسید بله تو موضوع اگر نمیدونی این نجس شده یا نه بلش اصلا تحقیق هم باید برید بپرسید اینو میگن لزوم فحص در شبهات حکمیه خب این بنده خدا در این شبه حکمیه اوغلا در شبهه حکمیه واجب است برن بپرسن پس ترچه واجبی کردن انا واجب کردن برای ما واجب میشه بیاد نه از مشکل کنه یا رو معروف کنه جوابش اگه گفت جوابش اینه که آه. جوابش نیکی ببینید لزوم فحض در شباهات موقعی است که طرف حواظش به اون مطلب به موج هست ما چه گفتیم اینا غفلتن دارن انجام میدن غفلت دیگه لزوم فحض نداره من وقتی کلن غافلم یعنی وقتی ماشه خریدم اصلا به ذهنم نگیرسه حجمشو بپرسن فکر کنم بله دیگه همه باید همین کارو بکنم لذا اصلا لزوم به فحص آینا نمیاد تا تک تکلیفی شده باشه. اون غفلت آسافی مونداشم هست. این اشکال یه چیز دیگه هم توش داره. این هم بذارم بگم. مجبور علمان میگن در شبهاتو که میگه شما باید فحص کنید. از این به بعد علمان دو دست میشه. بعد از این که فحص کردی در شبه ها ترک میگه و به نتیجه نرسیدی میبینی که بله همین بیمه هر چقدر گشتم چیزی پیدا نکردم پس این کار که در موردش دلیلی برمورد پیدا نکردم انشالله که بگید انشالله که جایزه هم. چون اگر حرام بود خدا به من نگفته که با اقابه بدا بیان میاد اگر خدا من رو کنه به من میگفت حرامه دیگه نگفته پس اقابه لا بیان نمیشم هم. لذا انجام بدن ماشکه بشه شاید صدر و تابع اینشون که اساطید دست خارج فعلی خیلی هاشون تابع شید صدر هم. چون گفتم یه پیلستیجی هم داره دیگه شهید صدر شما تو درس خارج بگید که شهید سهرنجو گفته تو با درس شهید صد میگی جلو میگن ها این پاسوات این حالا نه ما میگن درست یا غلطه ولی هست شهید صد و تابعینش میگن ما حق تایی هستیم بعد درحس هم حد ندارید قبه اقا بلا بیان را جاری کنید چرا چون بابا خدا خدای شماست پروردگار شماست حد طاعت باید گردن شما داره باید اطاعتش کنید جشنی نبود. شاید پیدا نکردی. لذا اونجا باید احتیاط کنی. البته طبق این قوپیدها بلا, بلا بیان باید احتیاط کنی. ها. این برایت عقلی است. اما برایت شرعیه رو نه. ممکنه بگیم نه. روایت گفته آقا اینجا اگر ای من تو کاریت نماشه. احتیاط نمیخواد. برایت, برایت عقلی اینجا جاری نمیشه. باید. پس اشکال رو تکییدش میکنیم اشکال رو یه خود جامعه تر میگیم میگیم سیره که به یک سیره ای عمل میکنن اهالی سیره ای که به سیره ای عمل میکنن اینها طبق نظر مشهور قبل الفطر حق نداشتن به سیر عمل کنن باید میپرسیدن فطر میکردن طبق نظر شهید صدر چه قبل الفطر و چه بعد الفطر باید اینها احتیاط میکردن حالا چه احتیاط نمی‌کنن و این فعل رو ملخچب میشن پس بر امام واجب این کارو نقد میکنه اینو حتما دقت کنید همون همونجوری که توضیح دادم مطلب روشن البته لا یغوال یجب الاحتیاط فشبوهات حکمیته قبل الفحص الاول مشهور این بنای اول مطلب اول بل و بعد الفحص تو نظری شهید صدر نما مرتبه فر احتمال تکدیفه البته بعد از که احتمال تکدیف باشه ها عرض کردم دیگه اگر بعد از فص یقین کردی که نه واجب نیست دیگه اون هیچی اون تمام احتمال تکدیف اگر بعد از هم بود مشهور میگن غقه غقه بلا بیان اما شاهد سر میگه نه حق طاعه نمیزاره شما احتیاط کن علالمسله که قائل به حد طاعه این مال بعد از یه تنجز و تکلیف ها علیه اینجا رو زیرا بشو زن ببینید عدم تنجز ما میگفتیم, میگفتیم. پس برای ما مواجه این رو هم گفت نه را دارین چون شپه حکمیه است و یجب و خب قفتی اون رو گفتیم دیگه تام تهش تشمیره دیگه و یجب و علم محسومه نه ان یا انسیرته چرا چون برانها تکلیف تنجز داشته. اموالی که اونها مخالفتن ل الحکم الواقعی حالا اینجا این کاری که انجام میدن در واقع در واقع یا مخالف با حکم یعنی واقعی است یعنی حکم واقعی بوده که اصلا خدا بیمه رو قبول نداره بیمه رو حرام میدونه یا اینکه نه شاید در واقع بیمه هم حلال باشه ولی اینا الان دارن خلاف حکم ظاهری عمل بکنن یعنی باید احتیاط می‌کردم احتیاط رو زیر پا گذاشتن پس بالاخره یا حکم واقعی رو زیر پا گذاشتن یا این حکم ظاهری رو زیر پا گذاشتم پس می که امال عجل کونه ها مخالفتن للحکم الواقعی در صورت که اون سیره در واقع خلاف باشه اول الحکم ظاهری که چی بود؟ من وجود احتیاط این من بیانی برای ب خروج پس برای ما واجب بود و لما لم يذكر النهي عنه يستكشف به امضاه ها حالا که نهایه نه نکرده پس معلوم میشه که امضا کرده امام با استی خب همین دیگه الان همینو گفت این مطلب احتیاطیه شما احتیاط رو رعایت کنی خیلی خب نتیجه اش میشه به حکم واقعی مخالفت کردی یا با خود همین احتیاط واجب مخالفت کردی بر تو لازم احتیاط بود چرا احتیاط نمی‌کنی خب امام این رو میگفت را احتیاط این دوتا یا حجم واقعی یا حجم ظاهری خوشگذره دیگه خب باشه همین دیگه امام میگفت را حجم این نیست یا میگفت حجم واقعی را نمیگم حجم ظاهری چه احتیاطه احتیاط کنم من تا گفتوامون مهم تا چون طبقه نظر مشهورعلان این حرف درسته. چون اونا میگن قبلا فص اینو باید احتیاط میکردن در حال چه احتیاط کردن پس یا با واقعی اینا مشکل پیدا خواهند کرد یا نه بگو اصلا در واقع درسته بیمه جایز بوده میگم خیلی خوب خود ظاهرشون هم که سیره پا گذاشتن از جواب جواب ان جواب همون مسئله چیه اینا بابا قفلت دارن با قفلت که فص و نیست که ان عدم تنجز الحكم علیهم کما تقدم ما که یکون ناشئ من عملهم و فتل بنا عتل و غفلتان عن مخالفت حال الشر این عدم تنجز که ما اونجا گفتیم به خاطر عدم علم و شک نبود که به خاطر غفلت بود قد یکون ناشن از عملشون به طبق بناهات و غلاییه که قفلتاً انجام میدن قفلت دارن با مخالفت اون و من قفلتت لا یجب الفخص ولا الاختیاط خیلی خوب وقت فقط تحسلم به ما سبقه صورت قلیم نشکل هم جدی موجود داره یعنی این داره بس امرونات باید موجود که بر بوده ایمام واجب میشه برد بس امرونات من راست دارید آیت بود چون در صورت انو امام, یعنی امام بوده از اصل اختیار اختیار داره یعنی جای که بوده در بازای امام بوده امام به واسه نفی کرده که نه اموال کرد یه عایه امام, یعنی امام در وقت امر کردنش بوده اگر که کرد کرده سقوط امام بر اساس خب ممنجد. همین داریم میگیم سکوت امام اینجا حجت نیست یعنی سکوت امام به خاطر این بوده که امام نه کرد لازم نمیدید انجام بده از مجرای نهی از منکر بیاد دیگه چون این اصطلاح برای اونه میگه آقا جان امام اینجا نهی از منکر نکرده خودش نکرده اصلا چرا چون به اینها واجب نبوده که ترک حرامی نکردن ترک ترک از نه ترجی نکردن اینها پس چرا امام بیاد نهی از منکر کنه اصل مواصله امام میاد در خاطر چه داره خلاصا این من هر چش فکر کنم این به سوالی که به این است از از, از بله. منجز شده بوده خب اون چه میگه میگه طبعتاً از که غلطه سکوت نه اونجا دیگه سکوتش دلت و رضا و صحت اونسی هست اونو چه کار نداره اون درسته اینجا میگه نه اینجا منجز نبوده خب حالا این خط تموشه برید دیگه فقط تحسلاً من ما سابقا کلاس دارید دیگه پشت درسته درسه پس دیگه ازتون این نتیجه این شد نهازت دلیل لایت ما لإثبات حجیت سیال و قلایت معاصلتاً کامت او مستحتستاً پس با دلیل وجوب امر به مرخ و نعید مکن اثبات نمیشه این سمه یه مطلب دیگه است فرد انشاءالله سلامت پفشستی سلام. خب آیه از قبل ببین فرض کن در زمان امام علیه السلام یک سیره بی بین همشون هست امام اگه از راه های دیگه میخوای برس کنی کالاست اون حرف دیگه ای. اما اگر از راه وجوب امره به معروف و نهی از منچن میخوای بگی تسیم داردن اون شرایط نهی از منچن نیست چون یکیش که بر اونها منجز باشه امام نگاه میکنه میبینه اینا غفلتن دارن این کار بد رو انجام میدن غفلتنه چه غفلتن چشون بگه خب اینا غفلت دارن حواستشون نیست. پس امام بیاد نحی از منکر نیست کدوم منکر یه چیزی که قفلتان انجام میشه منکر قام پس از مجرای نحی از منکر نمیشه رو از راه دیگر مثل وجوب ارشاد جاهر تو ذهنت به نظرم اینا هست که امام وظیفه داره جاهری رو هدایت کنید اون دلیل های بعدی میشه نه حق تو اصلا نیازی نبودید جا بگیر هر تائ در مورد مسئله جور دیگه داره اینو میگه میگه آقا جان اصلا هر تائ ای باشی حتی بعد از هم شما باید احتیاط میکردی اون داخل پرانتز بذارید اصلا. اون هر تائ رو داخل پرانتز بذار. یکی از های این کتاب که مطالب مختلف جای دیگه هم مثلا مربوط به جای دیگه هم هست تو همین جا میگه یه دفعه پیش میاد همین جا میگه. اینو به نظر میرسه که اصلا نمیگفت بهتر بود. حرف اینجا این بود که آقا جان شما چون فرس نکردی فرس بر تو واجبه. پس پر چه واجب داری بکنی؟ این بر تو منجزه. لذا امام باید بیاد نهی از موجود. حرف این بود. حتی تا اینجا خیلی مهم نیست. زیدتون رو از جهت این استدلاع درگیر نکنید. حالا باز اگه هر بشد فردا بهم بگو من بیشتر باز توضیح بدم که محقا ما معید روش داشتیم. خدا نگرده. خدا حاف